بحثی را که مشغول بودیم راجع به اوصاف امام بود و مطالبی را راجع به این جهت در ظرف دوست جلسه بیان کردیم و اگر بخوایم معتل همه اوصاف بشیم خیلی طول میکشه ولی نخوام زودتر بلکه خاتمه بدیم قضیه رو خواستم بلکه بشه امشب تمومش کنه ولی مثل اینکه نمیشه حالا ببینیم چی میشه امام را چون که قبلا این بحثش گذشته دو منصب برای او هست یکی زعامت امور مسلمین که این حوزه اسلام را و حکومت اسلام را امام باید اداره کنه این یه کارشه نتیجهتا حکومت ها حاکم های بلدها رو باید تعیین کنه قاضی ها رو باید تعیین کنه حدود و دست او و یا به امر او اجرا بشه امر به معروف و نهی از منکر کنه جل، جلوی ظلم ها رو بگیره و عدل رو اقامه کنه این یکی از کارهای امام است کار دوم امام چون که قبلا عرض کردیم رهبری امت است به سوی کمال رهبری امت به سوی کمال نه معناش فقط بیان کردن کمال است نه چون که همین یکی دو شب گذشته یعنی یک جلسه قبل یا قبلش عرض قبل کردیم هدایت تو هاشه ملا عبدالله نوشته دو جور دارین یه هدایت به معنای ارائه طریق است راه رو به انسان نشون بدن یکی انسان رو به مقصد برسانند یه وقت راه رو به انسان نشان میده یه کسی از من میبرسه سهن از کجا میرن میگم میری سر این کوچه بعد دست راست میری سر چهار که رسیدی دست چپ میدی مستقیم میرسه به سهن این ارائه تریقه راه رو نشون میده یه جوره؟ یه وقت نه یه کسی رو میبرم و به سهن میرسونم این کلمه رو میخواستم امشه این کلمه رو تذکرن عرض بکنم به سهن رسوندن این رسوندن به مقصوده نه فقط راه نشون دادنه این می رسانم به مقصود ولی مقصودم از رسوندن به مقصد نه معناش این از که مثلا دست و پای یه کسی رو ببندیم بندازیمش تو ماشین ببریمش تو سهن نه خودش میاد به اختیار خودش میاد ولی ما راه بر او هستیم به این معنا اگر از من بپرسه که سهمت از کدوم طرف میرن میگم من دارم میرم سهم تو هم دنبال من بیا او داره میادا. اما من خودم هم دارم میرم سهم این معنی رهبری است، رهبری امامت رسوندن مردم است به کمال معناش این است که امام میگه راه کمال این است که من دارم میرم تو هم اگه کمال رو طالبی دنبال من بیا یه کار امامه کار امام یکی اداره کردن حکومت اسلامی است، یکی هم رهبری کردن مردم است به سوی کمال انسانیت اونی که هدف دین و مقصد دین است رهبری کند مردم رو به کمال قولن و عملا و اعتقالن اینم یه مطلبه مطلب سومی که کار امامه است بیان کردن احکام بیان نشده توضیح و شرح دادن آیات تفسیر نشده بیان کردن مجملات قرآن بیان کردن مجملات احکام و بیان کردن احکامی که تدریجن یا مطالب اعتقادیهی که تدریجان برای جامعه در مسیر تکامل پیدا میشه اونا رو بیان کنه برای مردم این سه مطلب رو قبلا شرحش رو داده بودیم بنابراین بعد از اینکه معلوم شد امام کارش اینه بنابراین باید واجد شرایط یک حاکم اسلامی باشه. باید واجد شرایط رهبری به سوی کمال باشه و باید واجد شرایطی را که یک پیغمبری که مبین احکام است غیر از قضیه وحیش واجد شرایط یک پیغمبر باشه. که حالا توضیحش معلومش. بنابراین این مطلبی که ارز میکنم حالا غیر از اون وجوهی که و مطالب و صفاتی که قبلا عرض شده الان ارز میکنیم این سمنصب هر کدامش دارای یه است امام باید واجب این شرایطی ای باش شرط اولش ایمان است البته شرایطی که تو روایات خیلی زیاده بنده هم اونا رو نمیخوام عرض کنم چون خیلی هم وقت لازم داره در زمنی مطالبی گفته میشه شاید ولی اونی که بنده الان میخوام عرض کنم اون است که قرآن به او اشاره کرده اولین شرطش ایمان است حاکم اسلام و حکومت اسلام و امام و اون کسی که مبین احکام اول بسم اللهشونست که مؤمن باشه کافر آیا صلاحیت دارد که حکومت اسلام رو در دست بگیره؟ کافر صلاحیت دارد که رهبر کسی باشه؟ یا مبین احکام باشه؟ نه پس شرط اولش ایمانه دلیلش چیست؟ لنیج علالله للكافرینه علالمسلمین علالمؤمنینه سبیلاه خدا به هیچ وجه سلطنت و اقتدار و فرماندهی و حکومت از برای کافر بر مؤمن قرار نداده است بنابراین اگه مثلا عرض میکنم مثل یزید اومد رو کار یا که میگه لا او بت بالملک فلا خبر اونجا ولا وهی نظر این لام لا مذهب بیدین این صلاحیت نداره که حاکم اسلام باشه وظیفه تمام مسلموناست که ایراد روشش کنن این از واجبات مسلم اسلامه که این حکومت صلاحیت نداره که حاکم اسلام باشه بنابراین کسی که میگه اصلا وقتی چی به قول ما کش چی این صلاحیت ندارد که حاکم اسلام باشه و امثال این یزید در حکومت‌های بنی امیه و شاید در بنو عباس و غیر اینها متعدد بودن پس شرط اول مطلب این است که مؤمن باشد لا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفع الظالک فلیس من الله فیشه حق ندارن که ابتخاظ کنند جایز نیست که ابتخاظ کنند مؤمنین برای خود ولی از کفار لا یتخیب المؤمنون الكافرين أولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذالك کسی که این چنین کند این کاری که مرزی خدای تعالی است نکرده است فلیس من الله فیشن اینما ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين یقیمون السلاح من نمیخوام به این آیه حالا فعلا در مقام این نیستیم که این آیه در شأن امیرالمومنین سلام الله علی نازل شده ولی منحصرا میفرماید ولی شما خدا و رسول و مؤمنینن حالا حد اقل مطلب انما از ادات حصر است منحصرا ولی شما خدا و رسول و مؤمنینن بنابر این کسی حق ندارد یه ولیی و یک سرپرستی برای حکومت اسلامی که لا مذهب است انتخاب کنه پس شرط اولش ایمانه شرط اولش ایمان و اینگه چیزو واضحیست دلیل هم نمیخواد ولی قرآن مکررد آیات چم متعدده ها من از باب نمونه یکی دوتاش انتخاب کردم و عرض کردم ولی متعدده داریم بابت که کسی حق ندارد ولی انتخاب کند برای خود ولی کافری این مطلب تمام باشه گذاردش مطلب دوم امام برای چیست؟ امام برای سرپرستی حوزه و حکومت اسلام است برای اجراع عدل است برای جلوگیری از ظلم است این هم کار دوم امام است این چنین امامی خود باید عادل باشد تا بتواند اجراع عدل بکند آدم ظالم، آدم فاسق چطور میتواند اجراع عدل بکند چطور میتواند جلوی ظلم رو بگیرد چگونه میتواند جلوی فسق رو بگیرد باید عادل باشد تا بتواند این کار رو بکند از می کند که وقتی قرآن رو مراجعه کنید آیات متعدده که شما اطاعت از کی باید بکنید و شما حق دارید هر کس هر دستوری به شما میده اطاعت کنید و بپذیرید قرآن معیم میکنه و از رو تلکه آدون خدا می و تلک آدون جهدوا از می شود به اینکه که به آیات رب و عصو رسولهو و او رسوله امر کل جبار انیب و به فی هازه دنیا لعنتن و یوم القیامته کذا و کذا این قوم عاد کسانی هستند که آیات خدا را انکار کردن پیغمبران را اسیان کردند و تبع او امر کل جبار عنید هر ظالم و جائر و عنید و معاندی هر دستوری داد اطاعت کردند به واسطه این کارهاشون لایق شدند که فی فیهاز دنیا لعنه خدای تعالی در این دنیا اینها رو مورد عذاب و لعنت خودش قرار داد یوم و حسابشون سر خودشون محفوظه پس بنابراین ما حق نداریم یه حاکمی که به ظلم و جور امرو میکنه اطاعت از او بکنیم و تبعو کل جبار عنید و تبعو بله امر کل جبار انید پیروی کردن و دستوراتی را که حاکم زائل رالم و جائر میده نباید تاوت کرد پس بنابراین اونی که میخواد اداره کننده ی حکومت اسلام باشه باید عادل باشه لا ترکنو الی اللذین غلمو فتمسکون النار رکون و اعتماد به ظالمی نکنید که اینها شما را میکشن به آتش جهنم لا تو او امر المصرفین امر افراد مصرف را اطاعت نکنید و تبع او امر فرعون در حق قوم فرعون میفرماید اینها مطابعت کردند کردن امر فرعون را و ما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامه فا النار همون نار هرچی فرعون گفت اینا عمل کردند روز قیامت این دار و دسته فرعون با اصحابش خودش جلو میفته اینایی هم که اطاعت کردن ازشون وارده در آتش میشون استخفق قومهو فعتاوه انهم کانو قوما فاسقین در حق قوم فرعون میفرماید و مد این فرعون کوچیک شمرد مردم را و بی ارزش دانست مردم را اینا هم پذیرفتن این مطلب را او کوچه حساب کردین کرد اینها را هرچی دلش خاص عمر کرد بهشون اینا هم نپذیرفتن پس بلا این از این آیات چی معلوم میشه؟ کسی که زلم به ظلم امر میکنه کسی که جبار و عمید است کسی که مصرف است کسی که امرش رشد نیست و امثال ذالک کسی اقل نداره اینو بر خودش آقا قرار بده پس بنابراین ولی مسلمین که کسی که سرپرست حکومت اسلامی میخواد باشه باید عادل باشه حق نداره کسی هر که هرچی همه میکنی دنبالیش داره که لا توت من اغفلن قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اطاعت نکن کسی را که دلش از یاد ما غافل است و از شود به اینکه تابع هواها و میلهای های خودشه و امرش امری است و تفریتی و امثال ذالک بی حساب امر میکنه به تعویذ بنده او رو اطاعت نکن خب پس بنابراین از این آیات معلوم میشه حکومت اسلام باید دست کی باشه دست مصرف نباید باشه دست ظالم نباید باشه دست جبار نباید باشه دست عنید نباید باشه دست هواپرست نباید باشه اینا است که مریان میکن اینا رو قرآن ماید. و لذاست که شیعه قائله که باید امام معصوم باشه بالاتر از عادل حالا معصومش بعد میاد حالا معصومش باشه و زرش خودش حالا بعد برسیم باید عادل ادعاقل باشه بنابراین هر فاسقی که صلاحیت نداره که حکومت اسلامی رو در دست بگیره پس این هم شرط دوم مطلب اولا مؤمن و سانیان عادل چون او برای اقامه عدله کسی که به ما که میگیم از کوزه همون تراوت که در اوست اگه خودش ظالمه که ازش عدل بیرون نمیاد اگه او ظالمه که خودش صلاحیت برای اقامه عدل نداره بادی کسی به خودش درست کنه بنابراین اینم از آیات شریفه قرآن در میاد که باید رهبر و متأ کسی که امرش پذیرفته است، کسی که حرفش باید گوش کرد، کسی که اطاعت دستوراتشو باید کرد، او باید عادل باشه. اینم مطلب دوم. اینم بس قلا. عرض می‌شود به اینکه این آیه شریفه تتمه هم مطلب این آیه شریفه اطیعوا الله و اتی الرسول و اول الامر منکم این پشت سر آیه قبلیش اینه که ان الله يأمرکم ان عدل امانات الى اهلها فاذا حکمتون بین الناس ان تحکموا بالعدل إن الله نعم ما يعيذكم به ان الله انم كذا و كذا و الله و اطيعوا الرسول و اول منكم چندین روایت شاید به این مضمون یعنی اجمال مفادش ای که اون آیه اول خطاب به امام است و این دومی خطاب به مردم است یؤد ال امانات الى اهلها و ازاء حکمتون بینن ناس ان و بلعاد امام نیفرماد نمیبینی خدا تو قرآن فرماد ازاء حکمتون حکم کردن و قضاوت کردن و زیفی امامه و ازاء حکمتون بینن ناس ان و بلعاد این آیه خطاب به امامه اون وقت الله و اتیال الرسول و اول الام خطاب به مردمه اون وقت در زیل این آیه یه همچین روايتیه نیفرماد به این که حق على الإمام حقٔ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله فإذا ذلك فحق على الناس أن يطيعوا إمامي که بما أنزل الله حكم کند و دستورات خدا را بر طبق اون چرا که فرموده است اجرا می کند این است که اتی الله و اتی الرسول و اول مردم گفتن اطاعتشو بکنی و اما کسی که از مسیر اطاعت امر خدا خارجه ای اطاعتش لازم نیست و نه لازم نیست جایز نیست پس اینم مطلب بود. مطلب سوم چون که اول از کردیم امام رهبر است رهبر به همین معنا که این دینی که برای رسندن انسانها ها به کمالات است یه فرد هست تو عالم که واجد تمام این کمالات اون کمالاتی رو که دین آورده مجسمه کمالاتش این آغاز هر کی کمال رو میخواد دنبال ای بیاد و به تعبیر خود بنده ارز میکنم این رو ندیدم جایی به تعبیر خود بنده پیغمبر دستوراتش رو آورده میگه نمونه این کمالاتی که من دارم و این دستوراتی که دارم اگه نمونهشو میخوای اینها دنبالش بیاد و بهش برسی یه دستور که چنین کن چنان کن فلان کار فلان جور اخلاق اعتقادات اعمال رفتار چنین این دستورات وقتی اینا رو عمل کردی یه فرد کامل از انسان ها میشی این همینجور در مرحله تصوره نمیگه نمونش هم اینها این نمونش در هر زمانی تو روایات داره و این روایاتشو بعدا انشاءالله اگه زنده باید بخونیم در هر زمانی یه فرد کامل از انسانیت در عالم موجوده که هرکی که طالب کمال است و میخواد کمال رو عملا بیابه و چگونه باید برم که کمال رو بیابم او رو میزان قرار بده و امام اصلا همه اینه این نموجو ال امام لیعتم به امام رو که امام قرارش دادن برای این است که انسان به او اقتدا بکنه، گفتارش، کردارش، رفتارش، اعتقادش، اخلاقش، عملش دنبال یه بشر کریم می‌کنه، منم بکنم. اگه می‌خوای بری به سمت کمان این آقا اون فرد کامل انسانیت اون فرد بقوله بنده فرد مجسم قانونهای خداست خدا تو قرآن می فرماید بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین او العلم این قرآن آیاتی است که در دل دانایان است و به تعبیر بزرگان میگن اونی که به وجود لفظیش اونجاست به وجود واقعی و حقیقیش اینجاست وجود لفظیش تو قرآنه وجود واقعیش اونجاست و به آیاتون و فی صدور الذین و العلم وجود واقعیش اونجاست اگه تو قرآن واقعی رو میخوایی ناغاس نمونش به هر کمالی که طالب هستی باید دنبال ای بیای این رو میزان قرار بده بنابرای امام برای این کاره اصلا حقیقت امامت هم اینه رهبری و سوی کمال ولی رهبری از کردم نه فقط راه رو معرفی کردن میگه من دارم میرم شما بیاین اینجوری که ارز کردم اول میگه من دارم میرم به سوی کمال من سرسلسله و سرغافله و سردمدار کمالم هرکی میخواد بیا دنبال من این را یا الله بسم الله من آباد این, این شخصی که بخواد سر سلسله کمالات باشه و مردم رو به کمال رهبری کنه و برسونه برسونه هست کردم و این وسط ها برسونه نمیشه که دستش به ببنده ببره کمال نه میگه بیان خودتون ولی اینجاست راهش اینجوریه اینجوریست که من دارم میرم الان الان امیرون و فرمود لكل معموم اماما یقتدی به هدا و نمونم و به سنته الان و این قد اکتفا من دنیاهو به تمره و من تومهی به قرصه ولی شما قدرت ندارین اینونی به ورع این وشته ها شما که زور تو نمیرسته عمل کنید ولی به این حد عمل کنید پس من اگه امام اینه واجد تمام کمالات انسانی باید باش امام اونجاها نبره فقط حکومت اداره،, اداره حکومت البته اداره حکومت هم ارتباط پیدا میکنه با چنین کمالاتی حالا اون باشه تا بعد ببینم چی میشه ولی اون امامی که من میخوام کمال خودم رو از او به دست بیارم و دنبال او برم به حد کمال لایق انسانیتم برسم او خودش باید واجد کمال باشه که تا من رو بتونه برسونه یه دونه مربی نالایق که نمیتونه یه بچه لایق تربیت کنه یه مربی فاسد که نمیتونه یک بچه صالح تربیت کنه و هرم باید اونی که منه که من میخوام دنبال او برم و به کمال برسم واجد همه کمالات باید باشه نه فقط واجد کمالات باشه برترین فرد باشه در واجدیت کمالات و لذاست که فرموندن تو روایات داریم که حالا میکنم و لذاست که تو روایات داریم باید اعلم خلق باشه اشجع خلق باشه اسخای خلق باشه ارزمی شود به احلا همه صفات همه صفات کمال رو بهترین چون به همه دارن میگن بیان سمت کمال و براشون امام قرار گذاشتن امام سلمان هم هست داری سلمان هم امام میخواد عویزر امام میخواد به میشد میشود مقدار و عرض میشود به اینکه و امام میخواد امام سلمان کیه؟ باید کسی باشه لایقتر از خودش باید کسی باشه برتر از خودش که بهش بیدن دنبال ای برو. بس بنابراین باید افضل خلق باشه لذا علماء شیعه رو میگن کسی صلاحیت دارد که امام باشد که برتر و بالاتر و افضل جمیع خلائق باشد در هر کاری و در هر کمالی باید این چنین باشه تو صلاحیت رهبری داشته باشه اگر بنابراین یه فرد دیگه بهتر از او پیدا میشه او, او چرا امام باشه ای باید امام باشه اگه فردی مساویه‌ای با وای باشه پس این فرد امام نداره و حالا این بعد روایاتش بعد باید بیاد همه افراد امام دارن این فرد امام امام نداره امامش باشه فرجه خودش ولی همه افراد باید امام داشته باشه حالا این بعد میاد روایاتش پس بنابر این از همین مطلب که رهبر من و اون کسی که من باید به دنبال او باشم که از کدم مفهوم امام جاش اینجاست من باید به دنبال او باشم و پیرو او باشم تا به کمال برسم باید واجد همه کمالات باشه باید واجد همه کمال امیر و سلام الله علیه میفرماید به این که در جنگ ها هر وقت که کار بر ما سخت میشد کن نلوز و به رسول الله صلی اللہ علیه و هر وقت سخت میشد میدان جنگ که مثلا فرض کنید داشت دست ما در می, رفت می رفتیم و پیغمبر متوسل می شدیم و کانه و اقرب و ناس نزدیک نزدیکترین فرد به دشمن رسول الله بود از همه جلوتر و پیشتازتر بود و نزدیکترین فرد این معنیش اشجا الخلق شجاعترین افراد است. امام امیر المومنین باید باشه در زمان خودش او افزل نسبت به این اشجا اون ناس هست این پیغمبر بود امیر المومنین هم الله علی تو نجل بلاقه ای رو داره که می‌فرماید به این که نوشتم بذاره دخونم ول تو نجل بلاقه داره واللهه اینی لو تو هم قسم به خدا من تنها با تمام لشگر شام اگر برخورد کنم خودم تنهایی لشگر شام یک طرف و من تنهایی یک طرف لو تو هم و هم پلاع العرض تمام زمین رو پر کرده باشند از لشگر ما بالایت ولست وحشت نه اهمیت میدم نه وحشت میکنم و اینی من زلالت هم الذی هم علیها و الهدی الذی انا علیه علو بصیره من به بصیرت و می میبینم و میدانم که اونا گمراه و من به هدایت و حقم و انلم اون الى ملاقات لبی من طالب ملاقات حق هستم برایم بترسم. برای من مهم نیست یک تنه هم برم به میدان هاولا ها نهایت مطلب به تعبیر بنده نهایت مطلب کشته میشم دیگه خب کشته میشم ولی من وحشت داشته باشم خوش شجاعت یه صفت نفسانیه وحشت داشته باشم شما ابدا وحشت ندارم ولیکن این که می به شما اصرار میکنم بیاین مرا کمک کنید نه برای این از که من وحشت دارم از مطلب ولیکن آسا ان یلی امرها زهل امت فجارها و صفه من من تأصف میخورم که نکنه من بمیرم و فجار و صفه بر امر این امت حاکم بشم اون وقت فیت مال الله دولا و عباد الله خولا و صالحین با و فاسقی نه حزبا. مال الله رو دست به دست بگردونن بندگان خدا را عبد خودشون قرار بدهند با صالحین جنگ کنند و فاسقین رو برای خودشون حزب قرار درست کنند و بدن من برای قصد میکرم بنابراین اینه میخواستم از کنم که اشت یا الخلق است است که شجاعتش اولین فرد در آلمه و همین چنین راجع به علمش باید اعلم باشه واخه میخواد راهنمایی کنه بنده باید دنبالش برم و هر فردی باید دنبالش بره تا به کمال برسه اگه بلد نباشه که کمال یه مرتبه برای بلد باشه کمال متوی بالا رو بلد نباشه که فایده نداره صلاحیت برای رهبری نداره قهرن باید اعلم خلق باشه و وجعخه خلق باشه و سایر فضائل دیگر که در روایات مسکوره یه روایت دیگری به همین مناسبت شجاعت در اینجا نوشتم که عرض میکنم از صادق صلی اللہ علیه این الله تبارک و تعالی کلف رسول, رسول الله صلی الله علیه و علیه به معلم یکلف احدا خدای تعالی پیغمبر رو یه تکلیفی کرده که احدی از افراد رو اون تکلیف نکرده نه قبل از او و نه بعد از او چنین تکلیفی به اهدی نکرده و اون تکلیف این است که نیخ یخرج الان ناز کل وحده بنفسه اعلم یهجد ساعتم یا قاتل اگر فردی که کمکش کنه پیدا نمیشه خودش تنها موظفه بره با تمام مردم جنگ کنه. خودش تنهایی ان الله و که از این کلفه او ان یخ رو جعلن ناس کلهم وحده به نفسه اللم یجد فعتن یقاتل و معهو فی سبیل الله و بعد حضرت این آیه رو میخونه فقاتل فی سبیل الله لا یکلفو لا یالو تکلفو الا نفسک فقط خودت معموری و هر رزن مؤمنین علالقتال اونا رو هم ترقیب بکن ولی اونی که وظیفه داره فقط تویی پس بنابراین این هم فردی صلاحیت برای رهبری داره کی میخواد شجاع بشه بیا دنبال رسول الله شجاعت کمال است کمال عالی انسانیت اگه میخوای شجاع بشی بیا دنبال علی بیا دنبال رسول الله بیا دنبال امام سلام الله علیهم اجمعین هرشون بنابر بنابراین اگه کمال میخوام باید دنبال اینا بیام پس باید واجد کمالات باشن تا بتونن من راهبری کنن من برسونن به اون مقصد کمال انسانی گفت راختی که در آیه شریفه برمد علم تره اینه اول آیه ایل المل امین بنی اسرائیل از غالول نبی لهم و با ملکن نقاط الفی سبیل الله یه ملع و گروهی از بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن که یک سلطانی یه ملکی برای ما قرار بده که ما در زل حمایت او برین جنگ کنیم با این کفار حالا آیا را من نمیخوام بگم قال ان از مشرف قد بعث لکن تالوت هم ملکا تالوت رو برای شما ملک قرار داده است قالو انا یه له الملکی و نحن آحق بهیم من بل ملکه و نحن آحق بل ملکه مین و لم من المال ای از کجا صلاحیت داره که این حکومت رو پیدا کنه و این آقایی رو داشته باشه اینکه پولدار نیست قال ان الله است فاهم علیکم و زاده بسته ف ال علم رو انتخاب کرده و علم او را و قوه فهم و درک او را و قوای بدنه او را بر شما قلب داده و بیشتر قرار داده است او از نظر علم بر شما کامل است او از نظر شجاعت بر شما کامل است ملاحظه میفرمایید میزان ملک شدن و اختیار امری رو در دست گرفتن و استفاق خدای تعالی برای این منصب این دو صفت میزانشه ان الله اصفا و علیکم و زاده او بسطتن فل علم والجسم که علمای شیعه به همین آیه هم تمسک کردند که باید اعلم خلق و اشجع خلق باشه بنابراین پس بنابراین امام برای چه مقصدی است برای رهبری یعنی من دنبالش برم و به هر کمالی برسم وقتی میتواند این صفت و این منصب رو دارا باشد که دارای هر کمالی باشد که من دنبالش برم و به او برسم اگه خودش فاقده چه صلاحیت داره که رهبر من باشه و این همون مطلبی است که علمای شیعه تو کتاباشون میگن میگن خدای تعالی هیچ وقت مفضول را بر فاضل انتخاب نمی‌کند قاذل رو بذره کنار رو انتخاب کن این همین مطلبی است که هر عقل سلیمی او رو درک میکنه خدای تعالی تو قران ای رو به لسان دیگری بیان فرموده فرموده است هل یستو بالذین یعلمون والذین لا الله یعلم هل یستو بالاعما اف و افمن یهدی الی الحق حقا ان یتبع اما لا یه دی الا ان یه دا ما لکم کیف تحکمون آیا کور بهتره یا چشدار آیا عالم بهتره یا جاهل آیا کسی که شما را به حق هدایت کند ای بهتر است یا کسی که خودش را را گم کرده یکی دیگه باید بیاد دستشو بگیره ما لکم کیف تحکمون این انشاره به همون امر فطری و است که هر انسانی او رو درک میکنه کنه الله مثلا رجلین احدهما اب کم لایقدر و علاشه اینما یوجه هلایعته به خیل هل یستوی هو و من بالعدل بالعادل و هو علا یه به تعبیر بنده یه بنده خدای گونگی که گیجیس که هر جا میفرستنش امید خیر ذره از اون نیست کاری نمیتونه انجام بده آیا او در نظر شما برابر است با کسی که یامر بالعدل و هو علی مستقیم خودش بر سراط مستقیم است و دیگرون رو هم به عدل وادار میکنه این همون امر فطری و ارتكازی که همه درک میکنن قرآن داره با همین لسان ساده همون وجدان خفته ها رو بیدار میکنه که امام تو باید اعلم باشد امام تو باید اکمل باشد اشجع باشد اتقا باشد تا بتونه رهبر برای تقوای تو باشه رهبر برای صبر تو باشه رهبر برای یقین تو باشه و جعلنا هم یهدون به امرنا لما صبرو و کانو و آیاتنا یو حالا یا به آیاتنا داره یا نداره یادم رفته رو پیغمبر رو رو میشموره اصافشون میگه بعدا فرماد و جعلنا ما اینا رو قرار دادیم اینا رو رهبر و پیشوا قرار دادیم چرا قرار دادیم؟ چون صابر بودن چون یقین داشتن پس هر کمالی اون کاملش اینجا کی صلاحیت داره امام باشه اونی که سابر باشد اونی که یهل یقین باشد و اونی که شجاع باشد اونی که عالم باشد اونی که چه باشد الاماش آبا پس بنابراین مثل اینکه فعلا تا اینجا بسه تا بعد ها ببینیم به کجا خواهیم رسید اللهم ما شاء الله